اکنون دیگر کسی نخواهد توانست این شرم و رسوایی را بشوید. شهردار حکم کفن و دفن را به دست پدرم داده و پدرم گفته است. حال، هر اتفاقی هم که بیفتد مقدر بود است. انگار آن را در سالنامه نجومی اعلام کردند. و این حرف را با همان سستی و بیدردی که خود را به دست سرنوشت مکند و سپورت بیان کرد. با همان وفاداری که به چمدان‌های لباس همه ی کسانی که پیش از به دنیا آمدنم مرده بودند ابراز می‌کرد. از آن پس همه چیز رو به زوال گذاشته است. حتی تاب و توان و شخصیت استوار و سلطه خیش به تردیدی تلخ بدل گشته است. او بیش از پیش منزوی و خاموش به نظر می‌آید. و سرخوردگیش چنان است که امروز بعد از ظهر کنار نرده نشست و گفت تا روز قیامت همین جا در هم شکست خواهم ماند پدرم هرگز ارادش را به کسی تحمیل نکرده بود وگر امروز که آماده شد تا آن بعده ی شرماور را به سامان برساند او اینجاست و مطمئن از اینکه که همه چیز بیان که واقع جدی به دنبال داشته باشد بیش خواهد رفت گاخی را تماشا می کند که دست به کار باز کردن در خانه و میخگوبی تابوت هستند می بینم که نزدیکتر می از جا بلند می دست بچه را می گیرم و صندلی را به سوی پنجره می کشم تا وقتی آنها در را باز می کنند مردم شهر آن را بچه گیج و آشفته است وقتی بلند می با حالتی وصف ناپذیر و اندکی مبهوت به چهرم نگاه می کند اما اینک با حالی سرگشت کنار من است و ها را که به خاطر تقلای زیاد برای باز کردن لولاهای در عرق می نگاه می کند و با سر و صدای تیز و گوش خراش و کشدار آهنی زنگ زده سرانجام درها چهار تاق گشوده می شود. آنگاه بار دیگر خیابان را می بینم و گرد و قبار سفید سوزان و گدازان را که خانه‌ها را فرو می پوشاند و به شهر منظره‌گر قطاور اساسی کهنه و زهوار در رفته می‌داد گویی خداوند ماکندو را سرزمینی بی مص استوان را به همان گوشه‌ای پرد کرده است که شهرهایی را که از هر نو یاری و آفرینش باز ایستاده‌اند در آن نگهداری می بچه که در لحظه اول نور ناگهانی چشمانش را خیره کرده بود وقتی در گشوده شد دستش توی دستم درسید سرش را با حواسی متمرکز و با حالتی شوقامیز ناگهان بلند میکند و از من میپرسد تو هم صدا شنیدی؟ تازه است که متوجه میشمم در حیات یکی از همزایی ها مرغ مینایی ساعت را اعلام میکند میگویم بله ساعت باید حدود سه باشد و تقریبا درست در همان لحظه اولین چکش روی میخ نواخته می شود میکوشم که این صدای آزارنده و گوشخراش را که پوسته تنم را مور مور می نشنوم میکوشم تا بچه متوجه آشفتگی و آلت تشنجم نشود و همین خاطر رویم را به طرف پنجره می کنم و در کوچه بعدی درختان غمنگیز و خاکالود را بادام را می بینم که خانه ما در پس نمایان ها قرار دارد و نفس نامرعی ویرانی آن را نیز به آستانه فروپاشی خاموش و واپسین کشنده است از وقتی که ماکوند در شنگال شرکت موضوعتاد همه جایش چنین وضعی پیدا کرده است پیچک به خانه هجوم آورده علبهای هرز در کوجا روییده دیوارها فرو ریخته و در روز روشن، آدم در اتاقش مارمولک پیدا می‌کند. از موقعی که ما از کاشتن اکلید کویی و سنبل هندی دست کشیدیم ما کندو و ایران شده است. از آن هنگام که دستی نامر ای بشخابهای کریسمس را توی گنج شکست و گذاشت که بیدها توی لباسهایی که دیگر کسی نمی پوشیدشان چاق و چل شوند. وقتی دری هرز می شود دیگر دستی مشتاق و نگران آماده درست کردنش نیست. پدرم دیگران تاب و توان پیش از زمین خوردن را که برای همیشه لنگش کرد ندارد. سینیورا رابکا پشتان پنکی عبدی دلواپس چیزی نیست که جلوداران جنون بدخایی شود که بیوگی عقیم و دردمندانه در او برانگیخته است. اگائدا شل است و غرق در شکیبایی و امساک مذهبی و آن خل به نظر نمی رسد که هیچ دل خوشی دیگری جسوه حازمه مزمن ناشی از گفت ریزه داشته باشد که هر روز هنگام خواب نیم روز با آن درگیر است تنها چیزی که به نظر عوض نشده آواز دو های خرومه قدیس است و آن زن گدای اسرارامیز که به نظر نمی آید پیر شده باشد و 20 سال است که هر سهشنبه. به نیاز شاخی از درخت بادرنگ بویه به درخانه میآید فقط روزی چهار بار صدای سوت قطاری زرد رنگ و خاک گرفته که هیچ مسافری با خود نمیبرد سکوت را میشکند و شبها صدای تام تام موتورخانه برق به گوش میرسد که شرکت مز هنگام ترک ماکن و به جای گذاشت خانمان را از پشت پنجره می بینم و میدانم که نامادیم همانجاست و بی حرکت در صندلیش نشسته و فکر میکند شاید پیش از برگشتن ما آن طوفان واپسین که این شهر را خواهد رفت آرام بگیرد. آن وقت است که به جز ما همه از اینجا خواهند رفت. زیرا ما به این خاک با انباری پر از صندوق گره خورده ایم. اتاقی که از باب و اساسه خانه و جامعه های پدر بزرگ و مادر بزرگ پدر بزرگ و مادر بزرگ من و زین پوش هایی که پدر و مادرم هنگام فرار از جنگ آمدن به ماکندو به کار می در آن نگهداری می شود ما را خاطره مرده های دوری که استقانه هاشان دیگر حتی در عمق چهل متری خاک هم پیدا نمی شود به این خاک پیوند داده است شمدانه ها از آخرین روزهای جنگ به بعد در این اتاق بودند و در این بعد از ظهر نیز هنگام بازگشت از مراسم خاک سپاری در صورت اینجا خواهند بود که طوفان واپسین در نگرفته باشد طوفانی که ما را و اتاقهای پر از مارمولک و ساکنان خاموشش را که با خاطرها در هم شکستند خواهد رفت ناگهان پدر بزرگم از جا بلند می شود، بسایش تکیه می دهد و با سر پرندوارش که عینک چنان در آن جا افتاده که گویی پاره ای از صورت اوست سرک می کشد. فکر می کنم که اینک زدن برایم کار سختی باشد، با کوچکترین حرکت از گوشم خواهد لغزید، همچنان که به لغزیدن اینک فکر می کنم، با انگشت آهسته به بینیم می زنم. مامان به من نگاه می کند و میپرسد ناراحتت میکند و من میگویم نه فقط داشتم فکر کردم که نمیتوانم اینک بزنم و او لبخند میزند و نفسی عمیق میکشد و میگوید باید خیس عرق شده باشی و راست میگوید لباسهایم پوستم را میسوزاند و مخمل کبریتی سبز و زخیم که کیپ تنم است با عرق به تنم چسبیده و احساس خارش شدیدی به من داده میگویم بله و مادرم به سوی من خم می شود. گره کارواتم را شل می کند و یغم را باد می زند و می وقتی به خانه رفتیم می توانی استراحت بکنی و حمام بگیری می که کتا را صدا می زند. در همان موقع بار دیگر مرد ششلول بند از در عقبی وارد می شود وقتی به آستانه در می رسد کلاه از سربر می دارد و با احتیاط جلو می آید انگار می ترسد که مرده بیدار شود اما این کار را برای غافل گیر کردن پدر بزرگم انجام داد و پدر بزرگم که مرد حلش داده به جلو پرت می شود تلو تلو می خورد و سعی می کند که به بازوی همان مردی چنگ بزند که خواست بود او را نقش زمین کند بقیه دیگر سیگار نمی کشند و همچنان روی تخت خواب در یک ردیف مثل چهار کلاغ روی یک خرک نشستند وقتی مرد ششلول بند وارد می شود چهار کلاغ به خم می شود پچ پچ می کنند و یکی از آنها بلند می شود به طرف میز می رود و جعبه میخو خوچک را بر می دارد. پدر بزرگم با مردی که کنار تابوتی ایستاده حرف می زند. مرد می گوید نگران نباشید سرهنگ به شما اطمینان میدم که هیچ اتفاقی نمی افتد. و پدر بزرگ می گوید: فکر نمی کنم مشکلی پیش بیاید. و مرد می گوید: می توانند مرد را، بیرون، مقابل دیوار سمت چپ گورستان آنجا که درختان کاوک از همه بلندترند به خاک بسپارند. آن وقت که ای کاغذ به دست به بزرگم میدهد و میگوید، خواهید دید که همه چیز به خوبی پیش می رود. پدر بزرگم با یک دستش به اساتکیه می دهد و با دست دیگر کاغذ را می گیرد و آن را در جیب جلیغهش می گذارد. ساعت کوچک و چارگوش تلایش را هم که به زنجیری دست در آن جیب نگه می دارد. آنگاه می گوید حال هر اتفاقی هم که بیفتد مقدر بوده است انگار آن را در سال نجومی اعلام کردند. مرد میگوید بعضی ها پشت پنجره ها هستند اما فقط مه سکنجکاوی است زن همیشه به هر چیزی نگاه می کنند. اما من فکر نمی کنم که به در بزرگم حرف او را شنیده باشد برای اینکه از پنجره به خیابان نگاه می کند آن وقت مرد راه میافتد، به طرف تخت خواب میرود و همچنان که خود را با کلاهش باد میزند به مرد ها میگوید حالا می توانید تابوت را میخ کوبی کنید در زمین در را باز کنید تا کمی هوا بخوریم مردها دست بکار می شود یکی از آنها با میخ و چکش روی تابوت خم می شود و میخ می کوبد و دیگران به سمت در می روند مادرم بلند می شود عرق کرده و رنگ پریده است سندریش را کنار می زند. دستم را می گیرد و مرا کنار می کشد تا مردها بتوانند بروند و در را باز کنند. اول سعی میکنند زبانه قفل را کنگار به های زنگ زده جوش خورده است بچرخانند اما نمیتوانند تکانش بدهند. مثل این است که کسی با تمام قدرتش از سمت خیابان به در فشار بیاورد ولی وقتی یکی از مردها با شانه محکم به در میکوبد اتاق از صدای چوب و لولاهای زنگ زده و قولهایی که بر اثر گذشته زمان لای لای جوش خورده انباشته می شود و در هیول آوار باز می شود گویی مردی سوار بر شانه مردی دیگر می تواند از آن رد شود و صدای غشغش و جیر جیر کشدار چوبا آهن بلند می شود و پیش از آن که فرصت کنیم و بفهمیم که چه اتفاقی افتاده است نور سمج و خیر کننده و شدید به درون اتاق می پاشد زیرانها حفاظی را که دویست سال تمام با نیروی دویست گاو در را نگه داشته بود از میان برمیدارند و نور پرزور توی اتاق میپاشد و در سقوط پرخروشش خروشش اشیاء را به درون میکشد و مردها همچون ساعقه ونگام زهر ظهر رحمانه نمایان میشوند تلو تلو میخورند و چنین می نماید که مجبورند خودشان را سرپا نگه دارند تا نور آنها را نقش زمین نکند وقتی در باز می شود مرغمینایی در جایی از شهر آواز سر میدهد. حالا میتوانم خیابان را ببینم. میتوانم قبار رخشان و گدازان را ببینم. میتوانم چند مرد را که در پیاده مقابل نشسته و دست به سینه دارند و به سوی اتاق خیره شدهاند ببینم. بار دیگر آواز مرغ مینا را می شنوم و به مادرم میگویم گویم شنیدی؟ و او میگوید: بله ساعت باید حدود سه باشد اما به من گفت که مرغان مینا وقتی آواز میخوانند که بوی مرده بشنود درست در لحظه ای که صدای تیز چکش را بر سر اولین میخ می شنوم میخواهم همین را به مادرم بگویم صدای چکش همچنان آج می گیرد و همه چیز را در خود فرو می پوشاند لحظه ای باز می و آنگاه دوباره میکوبد و چوب را در هر ردیف شش بار می و ناله ی کشدار و غم گیز چوب های خفته را بر و در همین حال مادرم که سرش را به طرف دیگر برگردانده است از پنجره به خیابان می وقتی چکشکاری تمام می شود، آواز چند مرغ مینا به گوش می رسد. به بزرگم با آدمهایش علامت می داد. آنها به جلو خم شود. تابوت را کج می کنند و در این دم یکی از آنها که با کلاهش آن گوشه ایستاده به پدر بزرگم می گوید، نگران نباشید سرهنگ. با اون وقت پدر بزرگم، حیجان زده و آشفته، با گردنی متورم و سرخمانند گردن خروس جنگی برمیگردد اما چیزی نمیگوید گوید. باز همان مرد از گوشه دوباره به حرف در می آید. می گوید حتی فکر نمی کنم کسی در شهر باشد که این یادش بماند. در همین دم، واقعا آشوبی در دلم احساس می کنم. فکر میکنم الان واقعا میخواهم بروم بیرون اما میبینم که حالا دیگر خیلی دیر شده مردها آخرین تقلاشان را میکنند با پاشنهای سخت بر کف اتاق فشرده قامت راست میکنند و در این حال تابوت در نور شناور میشود گویی کشتی مردهای را میبرند تا به خاک بسپارند با خود فکر می میکنم اینک مرغان مینا را حس خواهند کرد اینک همشون آوا سر خواهند داد